جلسه قواعد فقه و سیاسه جلسه 58، 8 هشت هشت خورداد و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سال الله علی سیدنا و نبی القاسم محمد و علا احل بیت طاهرین المعصومین سیدم و بقیت الله فلعرزین روحی ورواه العالمین لحلفدان با استانت از خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و احل بیت اتخار علیکم السلام بحثمون رو آغاز میکنیم در آخر بحثی که داشتیم وارد این مقوله شدیم که خب اگر معیار ما معیار اصلی ما ترجیح اکثر و احترامند باشه و معیارهای دیگه هم بحث معیارهای فرعی باشن که اونها خودشون استطلالهای خاص خودشون دارن در واقع اینجا باید تطبیق کنیم نیارهای مزبور خلاصه مواردی بود که اشاره کردیم به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار میگرفتن خلاصه اینجا در اینجا صرفاً چی میشه تطبیق می توان به تطبیق و امکان یا موانع تطبیق اونها پرداخت خب پس در اینجا ما وجه اون بحث اسباق و زمانن امکن و تحققن اینها رو که گفتیم خب اینها یک مقوله‌های مستقلی می توانند باشند که در همه احسال دیگه هم می توانیم داشته باشیم به نمونه های مختلف کسرت نفوس محترمه رو هم گفتیم در یک تقریر می توانیم خلاص عنوان بچه ترجیح مستقل می توان محسوب کرد در مقابل اگر به مقوله احترام و تعداد نفوس توجه بکنیم می توان در واقع تقدیم جان خلاصه جان و سیانت از جان افراد متعدد رو میتوان خلاصه از حیث اقتضای کمی احترام محسوب کرد و به تعبیر دیگه یا به در نتیجه خلاصه از لوازم خواهد بود از نتایج از لوازم میار تقدیم اکثر و احترامن خواهد بود که اینجا یه جوری شده یا از لوازم یا تطبیقات میار اکثر و احترامن خواهد بود خب ما آمدیم این مورد رو گفتیم که یه جاهایی فلجمه داریم که مثلا مثل جان مادر اینا موردی که جنبه اجتماعی سیاسی داره خلاصه این هم تفز جان پیامبران و اوصیه اونهاست این هم میتوانه اینجا باشه اما این رو به عنوان می میگیریم در نتیجه خلاصه در برطری حضرات معصوم نسبت به خودمون رو اینجا در نظر میگیریم به عنوان پیشفرز البته از حیث حقوق شخصی چه بسا آن بزرگواران خلاصه حقوق شخصی برابر حقوق برابری با همه یا اکثریت جامعه داشته باشند طبیعتاً در بحث حاضر این حیثیت مورد نظر نیست بلکه از حیث وظیفه مکلفان نسبت به خلاصه آن نفوس مقدس در مقایسه با دیگر نفوس خلاصه بحث ما هست بحث حاضر از این جنبه خاصه در نتیجه خلاصه در اگر فردی مبتلا به تضاهم بین حفظ یک نفس، یک حفظ یک حفظ جان جان و نفس یک فرد عادی با حفظ جان یکی از خلاصه آن بزرگ وارون شود چیکار باید بکنه؟ باید اون رو خلاصه تقدیم بکنه سیانت از جان آن خلاصه اون مقدس ترجیح ضروری دارد پولیس. من اینکه که بگیم امکان نداره امکان ضعیفه تازه باز اونجا هم حتی ممکنه بگیم حتی میتوان حالا الان ما خیلی مبتلا نیستیم مگر اشاره در ظهور حضرت اما این بنطقه کار رو میخواد روشن بده حتی میتوان در واقع ترجیحات در واقع احتمالی در در واقع اینطور بگیم احتمال و میزان قوت احتمال در دیگر ترجیحات رو هم خلاصه مد نظر قرار داد و اونها رو خلاصه دارای اون رو خلاصه این احتمال رو داره و تلقی کرد خب حالا این بحث کمتر ما الان ابتلابش نداریم اما یه بحث دیگه که مشابه این بر اساس این الگوی اکثر و احترامن الگوی در واقع محیار کلی اکثر و احترامن این نشان میده که ما میتوانیم بریم سراغ دیگر نفروز هرچند دشتر ساق متنوده هم خواهیم بود ما بیا مثلا بحث الان میخواییم زمینه چینی بکنیم برای بحث در واقع مقایسی افراد عادی با شخصیت های سیاسی خب اینجا میتوانیم صحبت از چی بکنیم ترجیح حفظ جان شخصیت‌های کارگزاران کارگزاران حداقل اصلی نظام حفظ جان کارگزاران اصلی نظام حالا افراد آد... اگر شخصیت‌های پایین دست رو بگیم یه معمول دشوار میشه در واقع در واقع در نگاه عرفی و غلائی میتوان نوعی از ترجیح احترام میان جان کارگزاران اصلی نظام رو نسبت به دیگر نفوس دیگر اشخاص جامعه پذیرفت در واقع اف همه جوامع می توانیم بگیم این فرض رو قبول کردند ترجیح جیان حفظ خلاصه شخصیت های نظام آیا آبدارچی هم جز شخصیت های نظام؟ آیا شهردار آیا کارمند عادی اینا دیگه کارگزار اصلی نیستن؟ اما اجمالاً می توانیم اینو بپذیریم خب نگاه صوطی به عالم جعل اصل خلاصه ترجیح اکثر و احترامان رو پذیرفته. درسته. این عنوان یکی از پیشفرض هاست. پیشفرض اساسی ما این است که نگاه ثبوتی به عالم جعل و جعلشاره خلاصه اصل ترجیح رو پذیرفته. اما شناسایی مسادیق این خلاصه شاخص و این مرجع این عنوان میتوانه با کمک وجوه عقلی و خلائی و نصوص دینی خلاصه مورد انجام بشه برخی از این برخی از این موارد جای تعمول زیادی نداره از من امکان خلاصه اثبات اونها از منظر با از منظر سبوتی و اخلاقی امکان داره. برخی از این موارد در هیتیه هییت چی هییته امور اجتماعی سیاسی یا در مواردی از هیتهه امور خلاصه بگیم فردی حالا ما اونو کار نده میشه اجتماعی اما اجتماعی سیاسی امکان اثبات اونها خلاصه وجود داره. اثبات این موارد به ما کمک میکنه. خلاصه اینجا بحث ما چیه حداقل این که به طور نمونه در نگاه اخلاقی این وجود داره خب در نگاه شرعی هم این نگاه اجمالا قابل پذیرش هست چنان که خلاصه شواهد شرعی میتونه به اسبات این موارد کمک کنه ما به طور نمونه این بحث رو کار داریم اما کدام کارگزاران کارگزاران عادی نظام عادی عادی در یک نظام سیاسی می تقریباً تا اندازه‌ای خلاصه در سطح دیگر افراد احترام ویژه‌ای ندارند احترام شخصیتی در واقع بگیم شخصیت بگیم احترام حقیقی اونها حقیقی کارگزاران در واقع این احترام کارگزاران در یک نظام سیاسی از منظر شخصیت حقیقی اونها تا اندازه معمولاً در سطح خلاصه‌ در سطح دیگر افراد جامعه است اما بله یک کسی در صحبه داره کار میکنه بیل میزنه کشاورزی میکنه یک کسی داره جای دیگه کار میکنه یک کسی هم در ادارات عادیه بنابراین کارگزاران جامعه احترام خاصی لزومن ندارند لذا خلاصه اثبات ترجیح بین جان اون در اثبات ترجیح بین در واقع بگیم حفظ جانه چون این افرادی نسبت به دیگر افراد جامعه از حیث خلاصه برخورداری از حیث میزان برخورداری از احترام شرعی برابر است درست و جان اینها حفظ جان این در واقع اینطوری بگیم جان چون این افرادی از احترام یکسان برخوردار باید خلاصه اقتضای این امر در ترجیح یا عدم ترجیح حفظ جانه چون این افرادی نسبت به دیگر افراد جامعه دنبال کرد و بررسی کرد روشن است بی تردید خلاص از حیث میزان برخورداری از احترام شرعی افراد برخورداری در واقع افراد دارای یک سطح از احترام نمی توانند بر یک دیگر ترجیح پیدا کنند. خب، از منطق در واقع شاخص برای ما شد چی میزان احترام. خب اکثر و احترامند و اصل ترجیح اکثر و احترامند رو پذیرفتیم. اما مصادیق این نیازمند بررسیه اثبات خلاصه مصادیق مذبور از منظر سبوتی جای بحث داره از منظر سبوتی و اثباتی امکان داره اما اما خلاصه میتوان با تحلیل عقلایی از در واقع بگیم اینطوری بگیم با تحلیل تطبیقی با تحلیل تطبیقی معیار در واقع معیار احترام داری برخورداری از احترام در تلقی عرفی و عقلایی این امکان به ما کمک میکنه. می توانیم با تحلیل با بررسی تطبیقی معیار مزبور ما چه کار کنیم برخورداری از احترام رو خلاصه میزانش رو بسنجیم میزان برخورداری از احترام شرعی در تلقیه عرفی به امکان بگیم به تخییر به تخییر یا ترجیح میان دو یا چند نفس محترمه خلاصه دستیافت این یه نکته کلیدیه پس معیار برای ما شد چی؟ معیار میزان برخورداری از احترام اگر میزان برخورداری هست پس افراد عادی خلاصه اینجا وجود نداره اما اگر ما بیایم در واقع اینجا پس در افراد عادی ما حکمه تخییر میکنیم بگیم که تخییر در کارگزاران هم میان کارگزاران و افراد عادی کارگزاران عادی در مورد کارگزاران عادی اینجا الان ما نکته که داریم اینه که هم در میان اونها خلاصه خلاصه به این برتری رو دست پیدا کنیم این برابری میتواند در میان خود کارگزاران کارگزاران عادی لحاظ شود چنان که میتواند در در مقایسه اونها با دیگر افراد هم این خلاصه نتیجه رو صادق دانست اما مورد بعدی میشه چی؟ در نگاه اقلائی امکان ترجیح این مقوله وجود داره ترجیح جان کارگزاران اصلی نظام بر کارگزاران عادی هم کارگزاران عادی و هم افراد جامعه افراد دیگر خوب. چرا؟ چون اینجا یه احترامی اینو باید برسیم کنیم واقعا یه احترامی داری یا نه این احترام اگر خباشه در واقع وجه برخورداری اونها از احترامی بیش از بیش از احترام دیگران اینجا احترام مرد نظر ما احترام در جامعه، شبیه این رو در طبیعتاً آبرو هم میتوانیم داشته باشیم میتوانه امور خلاصه در امور زیر مرد نظر قرار بگیره یعنی چی یه بچینه که بگیم اونها جان اونها در خدمت جان دیگرانه حیثیت مقدمی جان آنان حفظ جان آنان نسبت به خلاصه حفظ جان دیگران او خب اینجا به ویژه این در برخی از موارد هست در اینجا این وجود داره حد اقل سیانت از بخشی از خلاصه از جان بخشی از کارگزاران نظام سیاسی به صورت مستقیم به صورت مستقیم به سیانت از جان افراد دیگر می چه اونا کدام هستن کارگزاران خلاصه نظامی کارگزاران نظامی در خلاصه صدران. حتی افراد پایین تر کارگزاران آلی نظامی اینها جایگاه اهمیتی دارند. سیانت از جان کارگزاران نظامی هم می تواند به از جان دیگران انجامد و هم می تواند به از کیان اسلامی به نظام و کیان اسلامی جامعه اسلامی خلاصه بیانجامه پس این امر خودش چیه؟ یه جنبه مقدمی داره در واقع این امر مقتضی در واقع ترجیح خلاصه جان در واقع ترج... اینطور بگیم مقتضی احترام جانی این افراد است چنان که خلاصه یه مقداری از این جنبه مقدمی بخش معتنابهی از این حیثیت میتواند در در واقع نسبت به جان تمام افراد نظامی افراد نظامی مؤثر نیز مطرح شود این یه نقطه کلیدیه خب پس حداقل اینجا سیانت در واقع این امر میتونه جان اونها رو هم واسه بده این یه مستقلیه خب اینجا حیثیت مقدمی حفظ جان کارگزاران کارگزاران اصلی بگیم کارگزاران اصلی نظام نسبت به جان دیگران خب اون بقوله جامع افراد نظامی خلاصه این امر میبایست در خلاصه به صورت استثناء خاصی به صورت برجسته در میان کارگزاران غیر نظامی عادی در مقایسه با کارگزاران غیر نظامی عادی لحاظ شه. خب این یه بحث مهمیه خب پس این یه معقوله اینجا افراد زیر پس دو مورد ما الان داشتیم کارگزاران اصلی نظام اینم شد حیثیت، مقدمی حفظ کارگزاران اصلی نظامی یکی, یکی کارگزاران نظامی حیثیت مقدمی در حفظ خلاص جان کارگزاران حتی اون رو اول باز بازی تفسیره باید داشته باشیم کارگزاران نظامی عادی نسبت به کارگزاران دیگه از کارگزاران نظامی اصلی عالی بگیم و عادی هر دو رو بگیم خب اما این پس در واقع امرو افراد نظامی شد اما آیا فقط همینه در واقع ما میباید جان افراد رو لحاظ کنیم الان اگر یک نظامی جانش حفظ نشه میان در واقع مقصد آفرینه خب این پس نکته چی بود؟ حفظ جان کارگزاران عالی نظامی عالی و عادی نسبت به حفظ جان دیگران خب اما اون کارگزاران اصلی نظام مثل رهبری حداقل رهبر رئیز هر جای پادشاه خب چگونه گفتیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؟ اونجا گفتیم مستقیم ولی غیر مستقیم هم باز داریم خب این جان کارگزاران اصلی نجزان به چه صورت در واقع این منطق ترور ها بر این اساس شکل میگیره که ما خدمت شما کنیم بگیم افراد تنوع دارند غیر از در واقع این کارگزاران اصلی نظام نظام سیاسی افزون بر شخصیت شخصی خود دارای جایگاه و بگیم نقش سیاسی هستند سیاسی هم. خب اینی که همه می دانن. به این معنا نقش سیاسی امنیتی در سیانت از حفظ جان مردم و جامعه جا، حفظ جان مردم جامعه و کیان اساسی نظام سیاسی رو دارن هم نظام سیاسی هم نظام اجتماعی اینها زندگیشون گره خورده به اون کیان جامعه کیان سیاسی جامعه از بین میره کارگزاران اصلی نظام پس یه شخصیت شخصی خود دارند. یه, یه جایگاه نقش سیاسی در خلاصه سیانت از جان جامعه دارند در نتیجه در موارد بگیم سیانت از شخصیت های اصلی اصلی در یک نظام سیاسی میتواند به اقتدار امنیت و صبات توسعه همه اینا اقتدار، امنیت، صبات و توسعه آن نظام خلاصه بیانجامد چنان که سادبینی و عدم احتمام نسبت به حفاظت حفظ جان اونا میتوانه مشکلات بحرانهای سیاسی و امنیتی برای جامعه و نظام سیاسی ایجاد کند خب لذا شما ببینید در عرف سنی چرا قاعده الحکم لمن غلب مطرح شده چون که اینجا سیانت از جامعه منوط به اینه که هر ایجاد نشه ترور یا ترور و کشتن شخصیت های اصلی نظام سیاسی می تواند به هر فراگیر در جامعه منجر شود که خلاصه قابل جبران و واقع مقابله ساده نخواهد بود که به راحتی قابل جبران یا مقابله نیست پس بنابراین ما احترام این کارگزار رو به کجا داریم بند می‌کنیم؟ به تعبیر دیگه خلاص بگیم به تعبیر دیگه احترام شرعی صاحب منصبان اصلی در جامعه میتواند برآمده برامده از همین جایگاه اونها جایگاه و اهمیت منصب اونها در سیانت از جان آهاد جامعه و نیز صبات و اقتدار اون خلاصه نظام سیاسی برآمده باشه بنابراین شارع حکیم این احترام رو لحاظ کرده احترام شارع به چه مناس احترام شرعی است صاحب منصوان اصلی اصلی صاحب منصبان و کارگزاران اصلی در جامعه بر اساس اینه خب از آنجا که خلاصه شارع حکیم احکام ویژه برای سیانت از جامعه و حکومت اسلامی لحاظ کرده می توان به این مسئله پی برد که, چی؟ که احترام ویژه‌ای که شخصیت, شخصیت حقوقی و جایگاه حاکمیتی این افراد مختزیه جعل این شن و جهل ترجیح جعل احترام خاص شرعی برای این افراد و شخصیت در واقع و منصب اونها مناسب اونها بوده پس در واقع این یک اصل باغلایی است که ما اون رو میبینیم که شعره متعال لحاظ فرموده و اون رو باید طبیعتن ما مورد شناسایی قرار بدیم خب اینجا مسادیق مختلفی میتوانیم محل بحث قرار بدیم اینها رو بشگافیم اما در برخی موارد تصدیق کنیم در برخی موارد ممکنه تردید کنیم خب اینها اقتضائات خاص هر بحثی هست اما نکته اساسی اینه که زاویه دید رو ما چگونه سامان بدیم بر این اساس ما بحث رو بردیم متوجه بحث احترام کردیم خب شما اگه برای اینکه مبتلا به یک نوع مسادره نشید باید چه کار کنید محاسدیق احترام شرعی رو پیدا کنید چرا چون ما دو تا جان رو داشتیم مقایسه میکردیم خب حالا مشابه این بحث ما میتوانیم در واقع ترجیح یک موازنه دیگه هم بین دو تضاهم داشته باشیم شبیه این مقوله ترجیح اکثر و احترامن در صیانت از آبرو بحثی که در دوستان فرمودن که ما به نظر قرار بدیم تقریبا منطق کار رو می توانیم اینجوری قرار بدیم اونجا بحث در این بحث ما بحث جان بود حفظ نفوس محترمه بود مشابه این بحث با همین روی کرد رو ما می توانیم در آبرو داشته باشیم در واقع قاعده ترجیح اکثر و احترامند در سیانت از آبرو پس پیش هایی که ما داریم پیش ها و وجوه ترجیح چیز یکی این که در جایی که تزاهم باید سیانت بشه محوله تزاهم در مواردی که وجوب سیانت از آبروی فرد یا افراد خلاصه تقدمی میتوانه داشته باشه به گونهی که از تزاهم ما رو خارج بکنه در مواردی خلاصه لزومن تضاهمی نیست می, می تواند به صورت غیر تضاهمی لحاظ شد و در مواردی که امکان داره به این صورت که یک طرف محترم است در موارد که فجوب سیانت افرد محترمه در اونجا ترجیح با ترجیح سیانت از آبروی فرد یا افراد محترم بر افراد یا افراد غیر محترم این این مورد از مواردی است که وجوب سیانت اونها میتونه به صورت غیر در واقع به صورت غیر تداخلی است به صورت غیر تداخلی لحاظ شده است این پیش و خب اونجا ترجیح ترجیح به نفعی غیر سیانتی بدون خلاصه تزاهم اما ترجیح داره خب این مورد در واقع در چون این مواردی ترجیح ضرورت دارد اما این موارد از سنخ تزاهم نیستند این یک پیشفرز پیشفرز دیگه هر کسی که ترجیح اکثر و احترامن یه جایی در برابری ما باید معیار قرار بدیم اونجایی که در واقع احترام وجود داره پس یک پیش که اینه که معیار برخورداری از اکثریت احترام میتوانه ترجیح وزار باشه خب اونجایی که برابری هست چی؟ برخورداری برابر از آبرو و در واقع بگیم احترام ارزی، احترام در آبرو مقتضی تغییر خواهد بود پس معیار اینجا اکثر احترامانه مشابه همین بس ما بعد چکار کنیم بریم این رو پیدا کنیم وجه ترجیح چی شد اونجایی که اصلا احترام نداره دیگه در واقع هستن تضاهم نیست اینجا وجه ترجیح در این مورد به خاطر عدم تضاهم است خب اونجایی که معیار تذابوم میریم سراغ ترجیح وجود داره میریم سراغ معیار اکثر و احترامن اونجایی که برابری از تخییر خب برخورداری از احترام بیشتر این یک اختزایی داره برابری یک اختزای دیگری داره نکته اساسی اینه که ما باید بیایم بر اساس ادله شرعی و عقلایی ببینیم آبروی چه کسی بیشتره شناسایی مسادیق برخورداری از احترام در آبرو هم میتونه از طریق عدله اثباتی شرعی انجام شود خب چنان که خلاصه اور اغلا هم اغلا در مواردی احترام برابر یا بیشتر برای افراد قائلند خب در صورتی که در صورتی که شرع و ادله اثباتی این جمله کنم در صورتی که شرع و ادله باطی ترجیح رو به جمله‌ای به یک طرف بدهند این مورد خلاصه ترجیح خواهد یافت